روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در گنچه هنوز و صدت اندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان قریب نیست چون من در اون دیار هزاران قریب هست در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست هر جا که است پرتو بر روی عبیب هست آنجا که کار صومعه را جلوه میدهند ناقوس دیر راهب و نام صلیب است عاشق که شد که یار به حالش نظر نگرد ای خاج درد نیست وگرنه طبیب هست سریاد حافظ همه آخر به عرضه نیست هم قصه غریب و حدیث عجیب هست